بیا و کشتی ما در شط شراب انداز خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز مرا به کشتی باده در افکن ایساقی که گفتن نکویی کن و در آب انداز زکوی میکده برگشتن زراح خطا مرا دگر زکرم با ره سباب انداز پیار زن گل رنگ مشک بود جامی شرار رشک و فسد در دل گلاب انداز اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن نظر بر این دل سرگشته خراب انداز بنیم شب اگرت آفتاب میباید ز روی دختر گل چهره راز نقاب انداز محل که روز وفاتم به خاک بسپارند مرا به میکده بر در خم شراباندا ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت به سوی دیو مهن نا و که